محسسه شادی پراکنی حجت الاسلام شجونی برای سرگرمی شما و شادی بخشیدن به مجالس و میهمانی‌های شما برگزار می کند. اجرای هنرمندانه انواع جوکا و شوخی با مقامات بلند بلندپایه نظام بدون عوارض جانبی میگن که اسرائیل به آقای جنتی گفته که تو یک هفته بمیر اگر دیدی اون بره دنیا بده من تو رو دوباره برمیگردم اسرائیل مخاص جننتی گل بزنه اجرای برنامه‌های ویژه و به یادماندنی تقلید صدا توسط استاد شجونی ملقب به شجونی دوهنجره ایشون گفت که درباره من چی میگن گفتم میگن اول خواستگار حضرت حوا تو بودی اما چون سنم بالا بود به تو ندادن ندادند حضرت آدم رفت حوا رو میخندید چی میگن تعریف خاطرات شاد و سرگرم کننده در جهت سرگرم کردن میهمانان شما من از دفترم مدد قیابان دیگه ماشین مبادرم یه خانمه به ما گیر داد گفت که شما خونده چرا از این مملکت نمیری؟ ما شرتون راحت گفتم <تصفح> خانم کجا بریم ما؟ ما که آمدیم بید. بری بری گفتم خانم کجا چی بریم و دهها برنامه فرح و متنوع دیگر در جهت گرمابخشی به مجالس و میهمانی‌های شما مؤسسه شاوی پراکنیه حجت الاسلام شجونی